دشمن چو از همه هیرتی فرو ماند، سلسله دوستی به جنباند، پس آنگه به دوستی کارهایی کند که هیچ دشمن نتواند.